ساعت هفت و پنج دقیقه بود که زنگ تلفن به صدا درآمد الویز از روی رف پنجره بلند شد و کورمار کورمال, کورمال دنبال کفشایش گشت پیدایشان نکرد جورا به ساقه بلند به پا با وقار و تقریبا با بیحالی به طرف تلفن رفت صدای تلفن مریجین را که دمر روی کاناپ خوابیده بود بیدار نکرد الویز بیان آنکه چراغ بالای سرش را روشن کند توی گوشی گفت: « الو، ببین. نمیتونم بیام تو رو بیارم مریچه اینجاست ماشینش رو درست جلوه ماشین من پارک کرده و کلیدش رو یه جایی گذاشته نمیتونم بیام بیرون بیست دقیقه توی چیز برف دنبالش گشتیم با ماشین دیکو میل درد راه بیاف بیا گوش داد خب بابا کارش نمیشه کرد پس یه دسته بشین و قدم رو بیاین خونه تو هم یک دو سه چار بگو سر بشو. دوباره گوش داد، گفت: من مزه نمیریزم، جدی میگم، مزه نمیریزم. به جون هر کی بخوای قسم میخورم. گوشی را گذاشت. قدم زنان و با وقاری کمتر از پیش وارد اتاق نشیمن شد. روی رف پنجره بطری ویسکی را توی لیوانش خالی کرد. به یک بنده انگوش می رسید، آن را سر کشید، لرزید و نشست. وقتی که گریس چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد الویز از جا پرید. بیان که برخیزد گریس را صدا زد و گفت بهتر است سب کنی ساعت هشت غذا رو بکشی گریس آقای ونگلر یک کم دیر میاد گریس زیر نور اتاق غذاخوری در آستانه در ظاهر شد اما جلو نیامد گفت خانم رفتن استراحت میکنه گریس گفت عذر میخوام خانم ونگلر میخوام خواهش کنم اگه اشکالی نداره شوهرم شب و اینجا بمونه توی اتاقم جا هست و تا فرد و صبح لازم نیست سر کارش توی نیویورک باشه بیرونم هوا خیلی خرابه شوهرت کجاست؟ گریس گفت راستش الان توی آشپزخونه است خیر نمیشه شب اینجا بمونه گریس چی فرمودین؟ گفتم نمیشه شب اینجا بمونه من هتل باز نکردم گریس لحظه درنگ کرد سپس گفت. چشم خانم؟ و توی آشپزخانه رفت. الویز از اتاق نشیمن خارج شد و از پلکان که از نور اتاق غذاخوری اندکی روشن بود بالا رفت. یکی از گالش های رامونا توی پاگرد افتاده بود. الویز آن را برداشت و خیلی محکم از بالای نردهها پرتاب کرد. گالش با صدای زیادی به کف سرسرا خورد. کلید چراغ اتاق رامونا را پایین کشید و انگشتش را مثل تکیه گاه رویش نگه داشت. لحظه بی حرکت ایستاد و رامونا را نگاه کرد. سپس کلید را رها کرد و تند بالای سر تخت رفت. رامونا، پاشو، پاشو. رامونا در یک طرف تخت خوابیده بود. کپل راستش از لبه تخت بیرون بود. دسته های را به دقت خوابانده بود و روی میز پا تختی گذاشته بود. دسته ها به پایین بود. رامونا؟ بچه نفس تندی کشید و بیدار شد. چشمایش را گوشود و تقریبا بیدرنگ آنها را تنگ کرد ماما انگار به من گفتی جیمه جیمرینو رفت زیر و مرد چی؟ الویز گفت گوشات سنگین شده؟ چرا کنار تخت خوابیدی؟ رامونا گفت چون؟ چون چی رامونا من خوشم نمیاد چون دلم نمیخواد میکی را عذیت کنم کی؟ رامونا گفت میکی اینیش را مالید میکی میکرانو، الویز جیخ کشید. برو وسط تخت، زود باش. رامونا وحشت زده الویز را نگاه کرد. الویز گفت، خیلی خوب. و مچ پاهایش را گرفت. هم او را بلند کرد و هم کشان به وسط تخت برد. رامونا نتقلا کرد نگریه. بیان که خودش را تسلیم کند، گذاشت تا الویز او را جابجا جا کند. الویز نفس نفس تنان گفت حالا بگی بخواب چشماتو ببند گوشات سنگین شده گفتم چشماتو ببند رامانا چشمایش را بست الویز به طرف کلید چراغ رفت و خاموشش کرد اما مدتی طولانی توی درگاهی استاد سپس ناگهان توی تاریکی با عجله به طرف میز پاتختی رفت زانویش به پایی تخت گرفت اما چون مصمم بود دردی حس نکرد. اینک رامونا را برداشت و توی هر دو دستش گرفت و به گونهاش فشرد اشک از چشمایش سرازیر شد و شیشه های اینک را تر کرد. چند بار گفت بیچاره رمو ویگیلی. دست آخر عینک را از طرف شیشه ها روی میز پا تختی گذاشت. روی تخت خم شد، تعادلش را از دست داد و بنا کرد هاشیه پتوهای تخت رامونا را تا بزند. رامونا بیدار بود. گریه کرده بود و همچنان گریه می کرد. الویز گریان لبهایش را بوسید، موهایش را از روی چشمایش کنار زد و سپس از اتاق بیرون رفت. از پلکان پایین رفت، حالا سخت تلو تلو می خورد و مریجین را بیدار کرد. مری جین از جایش روی کاناپه بالا پرید و گفت کی کی ها؟ الویز گریان گفت مری جین، خواهش میکنم گوش کن سال اول دانشکده یادت میاد سالی که اون پیراهن زرد و ای را از فروشگاه بویز خریدم و میریام بال در اومد گفت که کسی تو نیویورک اینجور پیراهنها رو نمیپوشه و من شب تو صبح گریه کردم دست مریجه را تکان داد و مل تمسانه گفت من دختر خوبی نبودم